بسم الله الرحمن الرحیم خب الاضافه ال اضافه رسیدیم شما مختصر بحث های رو در رابطه با بحث اضافه در کتاب قبلی خوندید ولی اینجا میخواد نکته های بیشتری اصلا یا به عبارتی دیگر هرچرا که در رابطه با اضافه باشد تقریبا اینجا دیگه توضیح میده و المعنویتو واللفظیتو اضافه معنوی و لفظی چار گروه از امثله رو آورده است علتهایی دارد نور و شمسی قویون انو طويل، طویلون ریش و در امثله گروه اول که از نوع لفظیش میباشد یا معنویش معنوی دیگه مرفوعاتی <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نه کاری به مرفوعات نداریم. این بحث میخواد احکاماتی در رابطه با مضاف و مضاف و اله رو بگوید لذا بردون رو تخصیمش میکند معنوی و لفظی چون فرقه های با هم دارند چون ما فقط کافی نیست که تشخیص بدیم این مضاف هست و مضاف رو نده رو هم تشخیص بدیم که آیا لفظی هست یا معنوی چرا؟ چون یک سری فرقه هایی با هم دیگه دارند معمولا در اضافه معنوی در اضافه معنوی ما اغراض معنوی داریم یعنی یا این که اون مضاف رو می خواهیم معرفه گردانیم مثل نور و شمسی قوییون نور مضاف کرد به چی؟ به معرفه دیگر و چی شد؟ تعریفش کرد معرفش گردانید اونو قل جملی تویلون ریش و طاوسی جمیلون یا اینکه که خاصش کنه مثل امثله گروه دوم یعنی مضافش کنه به نکره ای چون اگر مضاف بشه به معرفه میشه معرفه اگر مضاف بشه به نکر میشه خاص خاصتر میشه مثلا موقعی که میگه اسم او بوکا و تفلین بوکا معرفه نشده ولی خواستر شده اگر من بگم گریه اليش شندم عامه ولی اگر بگم گریه چه شامل گریه بچه میشه شامل گریه بزرگتر میشه شامل گریه مرد میشه شامل گریه زن هم میشه نه ولی اگر بگم شنیدم شنید دیگه گریه شد؟ خاص شد. پس اضافه معنووی یا معرفه میگردانه یا تخصیص مثل مس گروه دوم اصل بکاء و کاات فلین، آرا آفار قددان و شما راحت اووردن. اما شما در مسله گروه چه م اگر دقت بفرمایید صانع نقل معروفی صانع المعروف مشكور در این گروه سوم و چهارم که مضاف میبینیم که مضاف وصف است یعنی ذاتی است که دلالت بر صفتی می‌کند صانع متصف بهتی سر محمود سریع این اینجا ما هیچ غرضی معنوی نداریم بلکه فقط اضافه چی هست؟ لفظی است اضافه چی است لفظی است صانع المعروف مشکور محمود الخصال ممدوح اگر در معنا دقت کنید مضاف اله معنای معمول مضاف است به چه شکل؟ صانع المعروف انجام دهنده کار خیر ببینید معروف الفاظ معنایی مفعول بهی ای صانع است صانع المعروف صانعه چی صانعه چی چیزی ولی نور و شمس تونین نیست موقعی که میگیم نور و شمس یک اضافه معنایی است نور عملی انجام میده روی شمس نه عملش واقع نمیشه روشن ولی در صانع المعروف صانعه چی معروف میبینیم که الهاز معنان معروف مفعول بهیه چی میشه محمود الخصال چنین سریع الغضب این یکی از فرقه های دیگرشون بود در امشلی گروه چارم بفرمایید کنید تا فرقی دیگر را ببینیم الحافظ دروسهما ما با وجود این که مضاف هست میبینیم الفلام داره ولی قبلا ما خونده بودیم که مضاف الفلام نمیگیرد اگر جایی دیدید که الفلام گرفته بود پس بدانید که اون از نوع مضاف لفظی هست از نوع مضاف چه هست؟ لفظی هست و این نقطه رو در ذهنها داشته باشیم الحافظا اضافه لفظی گفتیم صفت هست گفتیم چه هست مانند سانه، محمود، سری، حافظ، متقین، مسنف المنصف رسی، المحب این مسنه مز... هست چه هست؟ است. هست المتقینو اعمالهم رابحون این چه هست؟ جمع مذکره، سالم هست المنصف الناسي مفرد هست كمضاف مضاف هست که لام دارد مضاف به هست که چی دارد المنصف الناسي می‌بینیم المنصف مضاف هست ولی چه دارد الف لام دارد المحب فعل ال مضاف لفظي بله مضاف معنوينه مضاف و مضاف لفظی همونه که اسم فاعل اسم مفعول مثلا در محل اضافه قرار بگیره یا اینکه مفرد باشه بله مضاف لفظی میشه سفته مثل صانع و حافظ البته میشه الف لام بگیره میشه نگیره مانند از صانع المعروف مشکور ما میتونیم بگیم از صانع المعروف مشکور مضاف مضاف لفظی میتواند الف بگیرد مضاف لفظی مضاف معنوی نه که توضیح داری فاعل مفعول جان جی مضاف لفظی همین فواعل چون اسم فائله یا اسم مفعول فرقی نمی‌کنه صفت باشه چه باشه وصف باشه وصف یعنی ذاتی که متصف به باشه ذاتی که متصف به چی باشه مثل سانه متصف به صنه محمود سریع حافظ المحب و فعل الخيری سعیدون اینجا هم اسم فائل مضافه به کلمه است که اون کلمه مضافه به کلمه الافلامداری هست لن قائد اینو توضیح میده القواعد الاضافت قسمان اضافه بر دو قسم میباشد معنویت و لفظیه ما مضاف إضافي لفظي داريم وإضافية معنوي داريم. السلام عليكم السلام ورحمة الله. فالإضافة المعنويته ما أفادت المضاف تعريفا أو تخصيصا إضافي معنوي هست؟ ميجي إضافي معنوي أنحس كمضاف يا تعریف برساند یا مضاف معرفه بگردد او تخصیصن یا خاص یا تخصیص شما در امثله گروه اول و دوم دقت بفرمایید موقع میگیم نور و شمسی قویون نور با مضاف شدن به شمس چی شده است؟ بله در امثله گروه دوم بوکا اتفلین بوکا با مضاف به تفل چی شده است؟ تخصیص شده چه شده است؟ ولا يكون المضاف فيها وصفا مضافا الى معموله از این از تشخیص بدیم که کدوم لا هست کدوم معنوی و میفرماید مضاف در این نوع معنوی وصفی نیست که به معمول خودش مضاف شده باشد وصفی نیست نور نور وصف هست وصفی نیست مثلا شما میتونید از نور چه صفتی گیرید نمی... <تصفح> نور خودش اسمه دیگه ولی دو... نه منظور خود کلمه به تنهایی وصف نیست برخلاف سانه موقعی که ما میگیم سانه سانه یعنی سازنده اونی که ازش چه صفتی گرفته میشه سازندگی بله وصف نیست اسم فائل مفعول صفت مشبه از این مشتقات نیست از این مشتقات نیست پس اضافه معنوی اونی هست که یا تعریف رو میرساند یا چه تخصیص اما اضافه اللفضیتو ما فی دل المضافه. إلا التخفيف المضافات يا المضافود الكتاب شو ما ما لم تفدل له إلَّا التخفيف باله إلَّا التخفيف بحذف تنوينه إن كان في الأصل منونة بيجي إضافة لفظي مضاف چه چیزی افاده چه چی چیزی می مضافش کردن برای تخفیف چه تخفیفی؟ حسف نونش اگر تنوین داشت حسف تنوین اگر تنوین داشت یا حسف نونش اگر مسنای جمع مذکر سالم بود مانند مثال گروه اول سانع المعروف مشکور اگر مضاف نمیدون می گفتیم سان اون چی؟ سان اون, ال... اون ولی الان که مضاف شده جهت چی هست؟ تخفیف هست حسف تنوینش یا اگر مصنع باشد یا جمع حسف چیشون؟ نونشون ويضاف فيها الوصف الى معموله در این نوع اضافه دقت بفرمایید در این نوع اضافه وصف به معمولش چی میشه بله دقت داشته باشید صانع معروف ملا سهیل صانع المعروف لحاظ معنا چی سانع مضافه به چیش هست به معمولش یعنی اللحاز معنوی سانع سانع المعروف روی معروف چی کار کرده است؟ عملش روی معروف واقع شده هست عملش مون معروف هست اصلا معروف عمل خودش هست مف... م... پس اللحاز معنایی مفعول بهیش هست ما اوغایی که میگیم زار بو زیدن ببینید تو این مثال دقیقت کنید زاربو زیدن مظمومون خب زننده زید این زدن روی کی واقعی شده زید. روی زید پس الله حاضر معنایی میبینیم که زید مفعول چه هست زننده. بله پس در اضافه لفظی در اضافه, اضافه چه لفظی می بینیم که اللہ حاضر معنایی مضافل الیه اللہ حاضر معنایی لفظی که خب شبیه همان اللہ حاضر معنایی می بینیم که مضافل الیه معمول چه هست؟ مضاف معموله؟ مانند زارب و زیدن ناصر و محمدن یاری دهنده کی؟ یاری روی کی انجام گرفته؟ بای ولی اضافه معنوی چنین نیست موقعی که میگیم نور و شمسی آیا همین حالتو داره؟ نداره دیگه این حالت نیست چنین نیست که شمس معمولی چی باشه؟ الهاز معنایی نور, نور باشه چنین نیست جن؟ جن؟ هست جن؟ جز اضافه های لفظیه ناصر زید می‌بینیم که زید اللاظمه معنایی معمول چی است ناصر هست یاریکوننده نصرت روی کی انجام گرفته روی زید ولی در معنای ها چنین نیست بله اضافه لفظی میشه صفته میشه چی 75 قايده يمتنع في الاضافه المعنويه كدوه ان كان في اصل جمله قبل هست اضافه لفظي آن است که مضاف نمی رساند مگر تخفیف رو با حصف تنوین اگر تنوین داشته باشد در اصل اگر کلمه ای در اصل تنوین داشته باشه و ما او رو مضاف کنیم تنوینش تی میشه؟ این ادامه جمله قبلی حساس کنیم میگه کلمه که در اصل تنوین داشته باشه زمانی که ما بیاییم اضافه لفظش کنیم روش تخفیف میادون تخفیف چه هست؟ حصف هست اگر تنون داشته باشه و حصف نون هست اگر مسنلا یا جمع مذکر باشه فهمدی؟ هفته پنجمین قاعده یمتنعو فل اضافت المعنویتی دخول و ال المضاف مطلقا در اضافه معنوی ممنوع هست داخل شدن الیف بر مضاف به شکل مطلق یعنی نمیتوان الیفلام رو روی چی آورد مضاف آورد در اضافه معنوی و یا بتنی ذالک فی لفظیت در اضافه لفظی هم نمیتوان الیفلام رو روی مضاف آورد الا فی ما مگر در موارد زیف که چار جا هستن که چند جا هستن به این تا مثال آورده بود در امثله گروه چارون و در بقیه جا سه تا مثال آورده بود الف ان يكون المضاف مثنى و جمع مذكر سالما زمانی که مضاف ما باشد مثل مثال یک از گروه چارم الحافظه یا جمع مذکر سالم باشه ماننده المتقنو اعمالهم رابحون پس میگه زمانی که اضافه لفظی باشد الفلان باز هم نمیگیرد مگر در چند جا زمانی که مضاف مسنّا باشه زمانی که مضاف جمع مذکر سالم باشه با ان یکول المضاف الیه مقرونا ب ال مضاف داشته باشه مانند المنصفو الناسی الناسی که مضاف الیه هستی الی داره الف داره او مضافا لما فیه ال یا یعنی اینکه مضاف الیه الی الی ال یا اینکه مضافن الی خودش مضافه به کلمه باشد که اون کلمه الفلام داشته باشه مانند المحبو فعل الخیری الخیر چه داره؟ الفلام داره فعل که مضافن اله هست خودش مضاف شده به کلمه که اون کلمه چه داره؟ الفلام داره پس در این چهار حالت زمانی که اضافه ما لفظی باشد مضاف میتواند الف بله بفضیلت خودش مضاف الی مضافه اس الف داره چرا الف داره طول که مضافه به کلمه ای هست که اون کلمه مضافه به کلمه ای هست که الف داره فهمیدید <تصفح> <تصفح> خب تا اینجا